افسان به نام خدای یگانی مهربان، سلام افسانه ها و قصه های هر کشوری نشون ی وضع زندگی گذشته مردم اون کشوره در واقع تاریخ گم شده هر کشوری رو میشه در افثانه ها و قصه های اون کشور جستجو کرد در برنامه این هفته هزار افسان افسانهای رو از مردمان سرزمین ترکیه براتون انتخاب کردیم البته قبل از شنیدن این افسانی زیبا براتون بگیم که ترکها در قرن دهم قبل از میلاد از آسیای مرکزی به ترکیه اومدن و مجموعه افسانه ها و قصه های با ارزشی رو با خودشون آوردن که از اون پس جزی از زندگی و فرهنگشون شد این افسانه ها و قصه های مردمی در خونه ها و قهوه خونه ها روایت و از نسلی به نسل دیگه رد و بدل شدند و ما افسانه ما افسانی کمال و مرد بازرگان برگرفته از کتاب قصه‌ها و افسانه‌های مردم ترکیه نوشته‌ی سومناتدار با ترجمه‌ی از محمد رضا شمس در زمانهای قدیم مردی در سرزمین ترکیه زندگی می کرد به اسم کمال که وضع مالی خوبی نداشت اما آدم زرنگی بود اون هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد و یه راست می رفت روی تپهی که روبروی خونش بود و بعد دستاش رو به طرف آسمون بلند می کرد و با خودش چیزهایی رو زمزمه می کرد و بعد هم به خونش برمیگشت. همسایه ی کمال که مرد بازرگان بسیار ثروتمندی بود چند بار به طور اتفاقی متوجه این کار کمال شده بود و کم کم حس کنجکاویش گل کرد و با خودش گفت آه من باید هر جوری شده بفهمم این آقا کمال چرا هر روز صبح زود میره بالای تپه و, و دستشو بالا میبره حتما آرزوی مهمی داره که هر روز برای مستجاب شدنش اینقدر دعا میکنه خلاصه، مرد همسایه تصمیم گرفت بره و پی به آرزوی کمال افسانه ما ببره. فردای اون روز، مرد همسایه زودتر از کمال از خواب بیدار شد و رفت پشت تپه پنهون شد و منتظر اومدن کمال شد. کمال، مثل هر روز از خواب که بیدار شد، یه راست رفت روی تپه و دستاش رو به طرف عاصبون بلند کرد و گفت ای خدای مهربون لطف کن صد سکه طلا به من بده فقط صد سکه ناقابل نه کمتر نه بیشتر فقط صد تا مرد همسایه که نفسش رو تو سینه حبس کرده بود خوب گوشاش رو تیز کرد تا هر کلمه رو خوب بشنوه کمال ادامه داد حتی اگه یک کیسه 99 سکه ای به من بدی من اون رو قبول نمیکنم فقط 100 سکه هم و بعد آمین بلندی گفت و از تپه پایین اومد و به طرف خونش رفت حالا بشنوید از مرد همسایه که براتون گفتن بازرگان بود و ثروتمند بله مرد همسایه وقتی دعای کمال رو شنید پوسخندی زد و با خودش گفت فقط صد سکه یعنی اگه خداوند به اون 99 سکه بده واقعا قبول نمیکنه یعنی با دیدن اون سکه ها واسه نمیشه و یادش میاد که به خدا گفته فقط 100 سکه نه کمتر و نه بیشتر و اگه کمتر بود سکه ها رو یعنی قبول نمیکنه مرد همسایه با تکرار این حرف فکری به ذهنش خطور کرد چه فکری الان براتون میگه بله مرد همسایه با خودش فکر کرد بهتره آقا کمال همسایش رو امتحان کنه بنابراین صبح روز بعد قبل از اینکه آقا کمال روی تپه بره و از خداوند خواستار صد سکه بشه اون زودتر رفت و 99 سکه نه سکهٔ طلا تو یک ای ریخت و در یه موقعیت مناسب بدون اینکه دیده بشه آروم اونو کنار آقا کمال قرار داد کمال هم که به بالای تپه رسید با دیدن یک کیسه روی تپه چشاش از حیرت گرد شد با خوشحالی کیسه رو برداشت و به تندی توی اونو نگاه کرد و وقتی سکه ها رو دید با خوشحالی گفت خداوندا خداوندا تو چقدر مهربونی بالاخره بالاخره صد سکه رو برام فرستادی ممنونم واقعا ممنونم و بعد شروع کرد به شمردن سکه یکی دوتا سهتا چهارتا همینطور شمرد و شمرد تا رسید به 99 ولی دیگه سکه ای در کار نبود کمال با تعجب این طرف و اون طرف رو جستجو کرد ولی خبری از سکه دیگه ای نبود که نبود بله توی کیسه فقط 99 سکه بود کمال یک کمی فکر کرد و گفت خداوند دعای منو مستجاب کرد این سکه ها رو اون به من هدیه داده پس پس درست نیست برای یه سکه یه هدیه ی اون رد کنم بله آره کار درستی نیست و بعد سکه ها رو ریخت توی کیسه و در حالی که خدا رو شک می کرد با خوشحالی از تپه پایین اومد بعد از اینکه کمال سکه ها رو برداشت و با خودش برد مرد همسایه نگران شد چون فکر میکرد کمال همونطوری که گفته بود سکه ها باید سر تا باشن و اگه سکه ها حتی 99 تا باشن اونا رو نمیپذیره پذیره ولی براتون گفتم که کمال افسانی ما 99 سکه رو هم پذیرفت و اونا رو برداشت مرد همسایه تصمیم گرفت به نزد کمال بره و به اون بگه که تمام ماجرا فقط یه شوخی بود همین همین کار رو هم کرد اون صبح زود به در خونه یه کمال رفت و دید که کمال در حال خوردن صبحونه است مرد با خوشرویی گفت سلام بر آقا کمال همسایی گلم خوبی؟ خوشی؟ کمال که انتظار دیدن رو نداشت با تحجب گفت سلام بفرما چه عجب چی شده صبح به این زودی سراغی از ما گرفتی؟ چیزی شده؟ حتما خواب منو دیدی نه؟ مرد همسایه با شرمسایی گفت نه، من, من، من، من، کمال گفت تو چی؟ بگو، رو نکن، ما با هم ایم هر روز چشممون تو چشم همه بگو ببینم چیزی میخواستی؟ مرد همسایه گفت نمیتونم چجوری بگم من من میخوام بگم من برای سرگرمی با تو یه شوخی کردم البته برای این شوخی بیمزه است و عض میخوام امیدوارم منو ببخشی من اون روز کمال کلام مرد رو قطع کرد و گفت کدوم شوخی ما که با هم شوخی نکردیم به قبل از اینکه مرد توضیحی در این باره بده ادامه داد من که چیزی یادم نمیاد ولی با این حالا هرچی بوده گذاشته شوخی که بد نیست شوخی دیگه باشه باشه من میبخشمم مرد همسایه که دیگه داشت حوصلهش از حرفای کمال سر میرفت با عصبانیت گفت لطف کن اون نود و نه سکه طلا رو به من پس بده کمال با شنیدن این حرف با تعجرب گفت سکه ها رو به تو بدم مگه تو مأمور خدایی من از خدای خودم تقاضای یه سکه کردم خداوند هم لطف کرد نود و نه سکه رو برام فرستاد خب حالا یه سکه کمتر که اشکالی نداره شاید هم یه روزی اون یه سکه یه باقی مونده رو برام فرستاد فعلا که عجلهی هم ندارم مرد سایه از شدت عصبانیت فریاد کشید اون سکه ها رو من برای امتحان کردن تو گذاشته بودم کمال با ناباوری گفت یعنی یعنی تو میخوای من باور کنم که تو فقط برای اینکه منو امتحان کنی دست به چنین کاری زدی مرد همسایه در جواب گفت مرد. یعنی تو هم میخوایی من باور کنم که این سکه ها رو خداوند برای تو فرستاده کمال بتوندی گفت البته که خدا برم فرستاده همسایه فریاد زد اونا رو من برات فرستادم من کمال گفت من از خدای خودم تقاضای سکه کرده بودم نستو مرد همسایه گفت ولی ولی باور کن این کیسه ها رو من کنار تو گذاشتم فقط فقط میخواستم با تو شوخی کرده باشم اما کمال افسانه ما تر از اونی بود که در مقابل حرف همساییش کوتاه بیاد و مدام میگفت این سکه مال خودمه خدا اونا رو برم فرستاده. بله مرد همسایه که حریف کمال افثانه ما نشد با عصبانیت گفت من از دست تو به قاضی شکایت میکنم کمال با شنیدن این حرف سریع تکنداد و گفت فکر خوبیه منم بدم نمیاد بریم پیش قاضی تا معلوم بشه که حق با منه یا با تو به بعد اضافه کرد البته میدونی که من سنی ازم گذاشته و نمیتونم پای پیاده تا محکمه قاضی بیام پس باید اولاغت رو برام بیاری وگرن نمیتونم بیام مرد همسایه در حالی که سخت عصبانی شده بود به خونش رفت و الاقش رو آورد و گفت بفرمای اینم اولاغ حالا زود باش آماده شد تا به نزد قاضی بریم کمال لحظه ای فکر کرد و گفت آخه دوست عزیز من با این لباسای کهنه نمیتونم نست قاضی بیام. مرد عصبانی شده گفت تو که نمیخوای بری مهمونی؟ کمال گفت: ولی لباس کهنه اثر بدی روی قاضی میذاره. مرد که دیگه واقعا عصبانی شده بود، فوری خودش رو به خونه رسوند و قبای زیبا و ابریشمیش رو آورد و به کمال داد و گفت: بفرما اینم لباس فاخر حالا اگه بهانه دیگه ای نداری زودتر را بیفت کمال قبای ابریشمی رو پوشید سوار بر الاغ شد و همراه همسایه خود به محکمه قاضی رفت. بله کمال و مرد همسایه رفتن محکمه قاضی تا ببینن حق با کدومشونه به محض ورود به محکمه مرد بازرگان فریاد کشید جناب قاضی جناب قاضی حقم حقم حقم داره از دست میره قاضی از جا بلند شد و مرد رو به آرامش دعوت کرد و گفت آروم باش مرد اینجا حق کسی از بین نمیره به بعد از اون خواستا ماجرا رو تعریف کنه و مرد بازرگان هم تند و تند شروع کرد به توضیح دادن در تمام مدتی که بازرگان در حال حرف زدن بود کمال افثانه ما سکوت اختیار کرده بود و فقط گوش می داد. وقتی که حرفای بازرگان تموم شد قاضی رو به کمال کرد و گفت خب حرفای مدعی رو شنیدی حالا تو هم اگه حرفی داری بگو کمال سینش صاف کرد و با آرامش تموم گفت جناب غازی من هر روز به درگاه خداوند دعا میکردم که خداوند لطف کنه و صد سکه طلا به من هدیه کنه و بالاخره خداوند سکه ها رو به من هدیه کرد و این مرد فضول حالا که فهمیده دعای من مستجاب شده ادعا میکنه که این سکه ها مال اونه آیا این حرفش منصفانه و قانونیه بازرگان با این حرف کمال سراسیمه فریاد کشید بله منصفانه و قانونیه و بعد ادامه داد جناب قاضی بزرگ باور کنید این سکه ها مال منه من اونا رو در کنار این مرد گذاشتم تا اونا امتحان کنم قاضی پرسید امتحان؟ چه امتحانی؟ مرد بازرگان جواب داد قربان این مرد در حین دعا به خداوند گفته بود فقط صد سکه میخواد و اگر تا خداوند 99 تا هم به اون بده اونو قبول نمیکنه کنه منم با قرار دادن 99 سکه طلا خواستم اونو امتحان کنم ببینم واقعا اونا رو قبول میکنه یا نه و تا چه اندازه به حرفی که به خداوند زده پای بنده همین کمال قبل از اینکه قاضی حرف بزنه گفت جناب قاضی به حرف این مرد گوش ندین چون اگه اینطور پیش بره تا چند لحظه دیگه مدعی میشه که این قبای ابریشمی که تن منم مال اونه بازرگان با این حرف کمال فریاد زد البته کمال منه مگه یادت رفته اونو من بددادم کمال گفت ملاحظه فرمودید قربان حتما بعد از اینم ادعا میکنه صاحب الاق منم هست بازرگان با تحجب گفت اولاغ؟ الاق مال منه تو چجوری ادعا میکنی که حیف حیف که این حیوون زبون نداره و گرنه خودش به زبون میومد و میگفت که صاحبش کیه من یا تو کمال گفت اگه این علاقه بیچاره زبون نداره که حقیقت رو بگه من خودم زبون دارم و میگم که این علاق مال منه نه مال تو مرد بازرگان که دیگه اعصابش از حرفای کمال حسابی خود شده بود گفت قربان قربان من دیگه تحمل و دروغای این مرد رو ندارم کم مونده یه چیزی هم بهش بدهکار بشم بعد رو به کمال کرد و گفت واقعا که خیلی دروغ گویی تو عمرم آدمی مثل تو زبون باز و دقل باز ندیدم تو یه دوز تمام ایاری خلاصه مرد بازرگان هرچی از دهنش در اومد نصار کمال کرد اون واقعا خشکین و عصبانی بود قاضی که کم کم صبر و تحمل خودش رو از دست میداد بر سر مرد بازرگان فریاد کشید و گفت: بس کن مرد که دقل باز این حرفا رو سرهم هم می کنی که منو هم فریب بدی و این مرد شریف رو هم بدنام کنی اگه اگه یک کلمه دیگه بگی دستور میدم یه راست بفستنت زندان بازرگان هر سعی کرد قاضی رو متقاعد کنه فایده نداشت که نداد و بالاخره هم به دستور قاضی مرد بازرگان رو از محکم بیرون انداختن کمال افسانه ما هم بعد از تشکر از قاضی به طرف خونش رفت و وقتی رسید بلا فاصله به در خونه همسایش یعنی همون مرد بازرگان رفت بازرگان با دیدن کمال سخت عصبانی شد و گفت من دیگه چیزی ندارم که تو اون بشی این بود حرمت همسایگی؟ کمال خندید و گفت <تصفيق> اشتباه نکن دوست من من اصلا قصد عذیت و آزار تو رو ندارم باور کن هیچ چشم داشتی هم به مال و منال تو و اون سکات ندارم الانم 99 سکه یه تلاو و الاق و اون قوای عبری رو پس میدم مرد بازرگان با حیرت به کمال نگاه کرد اصلا باورش نمیشد شد که کمال اون چیره که ازش گرفته به همین بهش پس بده. کمال گفت دوست من خوب گوش کن. هیچ وقت سعی نکن. بندگان خدا رو با شکستن قولشون امتان کنی. و بعد نود و نه سکه یه تلاو و اولاغ و غبای ابریشمی رو با کمال احترام به مرد بازرگان پس داد. مرد بازرگان هم به خودش قول داد که در کار دیگران فزولی و کنجکاوی بیخودی نکنه و اونجوری که کمال افسانه ای ما خواسته بود بندگان خدا رو با شکستن قولشون امتحان نکنه. افسانه کمال و مرد بازرگان رو از گنجینه افسانه‌های مردم سرزمین ترکیه براتون نقل کردم. برگرفته از کتاب داستان‌ها و افسانه‌های مردم ترکیه نوشته سومناتدار با ترجمه از محمد رضا شمس. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدا شیما کومیلیزاده تعیه كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهی دیگر بدرود